بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له افواً احد به نام خداوند بخشنده بخشایش کرد بگو خداوند یکتا و یگانه است است که همه نیازمندان قست او میکنند هرگز نزاد و زاده نشد و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبود است